دوستان اگه مجبور باشید پیام کتاب مقدس رو در دو کلمه خلاصه کنید، اون دو کلمه چی میتونه باشه؟ معلم ما میگه میتونیم کل کتاب مقدس رو به یکی از این دو خلاصه کنیم. اول خدا یا اول مسیح در درس امروز دانشکده یک کتاب مقدس، معلم ما نگاهی خواهد داشت بشخاه کار الهیاتی در مورد شخص ایسای مسیح از نامه پولوس رسول به کولوسیان. به دانشکده کوچک کتاب مقدس خوش آمدید. خوشحالیم که تصمیم گرفتید وقتتان را برای مطالعه کلام خدا اختصاص بدید. حالا با هم به معلممون گوش میکنیم. اول مسیح به کلاس دیگری از دانشکده کوچک کتاب مقدس خوش آمدید. ما جلسه امروزمون را با بررسی نامه پولوس به کولوسیان شروع می‌کنیم. پولوس نامه خودش برای کولوسیان را این از طرف من پولس که خدا برای خدمت به عیسی مسیح برگزیده و از طرف برادر ما تیموتاوس به برادران وفادار مسیحی ما که در شهر کولوسی میباشند از درگاه پدرمان خدا و خداوند خداوندمان عیسی مسیح طالب رحمت و آرامش برای شما هستم. پولس وقتی برای ایمانداران کولوسی نامه می نویسه برکت خدا را بر برادران و خواهران وفادارش اعلام میکند. پولوس نامه اپسوسیان رو هم با برکت دادن برادران و خواهران ایماندار به عیسی مسیح و خواهران و برادران وفادار شروع کرده بود. من میدونم که در هر گروهی، در هر اجتماعی همیشه افراد خیلی کمی که در اقلیت هستند وفادارند. راستشو بخواید من نمی نمیدونم چند نفر افراد وفادار توی هر جماعتی هستند، اما اینو میدونم که تعدادشون شاید دو یا سه نفر باشه. شاید کمی بیشتر، اما همیشه در هر اجتماعی در هر گروه ایمانی تعدادی افراد وفادار وجود دارند که که ظاهرا به نظر میرسه تمامی کارها را اونها انجام میدن. وقتی که میبینم این دو دونامه افسوسیان و کولوسیان خطاب به برادران و خواهران وفادار در اون نواحی نوشته شده این قلب منو خیلی لمس میکنه. شهر کولوسی در فاصله 160 کیلومتری از افسوس و حدود 18 کیلومتری لودیکی قرار داره. جایی که فکر می‌کنم یکی از زیباترین مناطق دنیا هست. یادتونه که گفتم کلیسای افسوس احتمالاً کلیسای مادر اون هفت کلیسایی هست که در کتاب مکاشفه به اونها اشاره شده. در آخرین کتاب از کتاب مقدس هایی به هفت کلیسا نوشته شده که با کلیسای افسوس شروع میشه و بعد کلیسای اسمیرنا، پرگاموم، سارتس، کیاتیرا، فیلادلفیه و لاودیکیه هست محققین معتقدند که همه این کلیساها حاصل اون دو سال خدمت تعلیمی پولس در مدرسه تیرانوس بوده. این احتمال هست که کلیسای کولوسی هم یکی از کلیساهای اقماری هست که از کلیسای افسوس جدا شده. رساله ی کولوسیان نامه ای هست که پولس خطاب به مردم کولوسی نوشته. از متن نامه ی پولوس کاملا مشخص است که هرگز در اونجا حضور نداشته. او کولوسی رو ندیده بود اما پولس مردم کولوسی رو میشناخته. پولس زمان زیادی رو در افسوس صرف کرده بود که مردم کولوسی هم به اونجا میومدند و میرفتند. وقتی پولس در افسوس بود اونجا شهری بندری بود. اما امروزه به خاطر فرسایش های زمینشناسی و عواملی که پیش اومده شهر افسوس حدود پنج کیلومتر با دریا فاصله داره. ولی در دوره پولس اون شهر کاملا کنار دریا قرار داشته. افراد زیادی به این شهر رفته آمد میکردند. و از این رو پولس برخی از اونها رو میشناسه از جمله افرادی از کولوسی و افرادی از روم رو میشناسه پولس فیلیمون رو میشناخته وقتی که ما رساله فیلیمون رو بررسی بکنیم او رو خواهیم دید فیلیمون یکی از افراد کولوسی هست که به افسوس رفت آمد داشت و بخشی از جلسات کلیسای کولوسی در خانه ی فیلیمون برگزار می شده پولس فیلیمون و برده فراری او اونیسیموس رو میشناخت در این نامه پولس به شخصی به نام اپافراس اشاره میکنه اپافراس ظاهرا شبان بوده و حتی شبانی که شاید کلیسای کولوسی رو تأسیس کرده بود کلیسای کولوسی مشکلاتی داشت و این مشکلات در سه بود بودن. اول مشکلاتی در رابطه با حملات فیلسوفان بود حملات روشنفکرانی که بر ایمانداران کولوسی میومد و ایمان اونها رو به چالش میکشید به نظر میرسه که این نوع حملات امروز هم بر روی ایمانداران هست در همه نسل‌ها ما این رو میبینیم پولس در این نامه به کولوسیان مینویسه اجازه ندید هیچکس با فلسفه خودش ایمان شما رو زایه بکنه چون ظاهرا این اتفاق داشت برای شاگردانی که در کلیسای کولوسی بودند اتفاق میافتاد. حملات فلسفی بر روی ایمان اونها بسیار قدرتمند بود مشکل دیگر مشکل شریعت گرایی بود به نظر میرسه پولس هر جایی میرفته با این مشکل دست به گریبان بوده شریعت گرایی مشکل بزرگ کلیسای غلاطیه هم بود یهودیان شریعتگرایی در کولوسی بودند که سعی داشتند آیین شریعت خودشون رو بر ایمانداران و مردم کولوسی هم تحمیل بکنند. بعد دیگری در کلیسای کولوسی هم بودند که گرفتار پدیده‌ی روحی بودند. معمولا همیشه افرادی هستند که به پدیده‌های روحی خیلی علاقمند هستند. وقتی شما بخواید در مورد پدیده‌های روحی صحبت بکنید، معمولا شنوندگان زیادی خواهید داشت. مردم به طور ذاتی به پدیده های روحی علاقمند هستند. بسیاری از مردم فکر می کنند که پدیده های روحی قدرت العاده خدا رو نشون میدن. همونطور که خیلیها هر موجود روحانی روح القدس هست. به این دلیل هست که اده از مردم با دیدگاه ها و اعتقادات فراروانشناختی چیزهایی نظیر ارتباط با عالم مردگان و احزار ارواح رو نشانه از حضور خدا و میدونند حضور چنین افرادی در کلیسای کولوسی هم یکی از مشکلات عمده بود افرادی که دچار تخیلات بودند و فرشتگان را می‌پرستیدند و به عالم ارواح و به این قبیل چیزهای موهوم اعتقاد داشتند که متاسفانه امروز هم بعضی از کلیساها درگیر این مطالب هستند مشکلاتی که گفتیم در سه بود در سه اندازه بر کلیسای کولوسی آمده بودند برای مردی مثل اپافراس که از نظر سنی از پولس کوچکتر بود به نظر می رسید که طاقت فرسا و بزرگ است این احتمال وجود داره که اپافراس یکی از شاگردان پولوس در مدرسه تیرانوس بوده چون که او هم مثل هر شبان دیگری که در اوایل خدمتش با مشکلاتی مواجه میشه بلافاصله دست به دامن استاد پیرش میشه و از او میخواد که راهنماییش بکنه وقتی که اپافراس داشت با این مشکلات دست و پنجه نرم بلا فاصله دست به دامن پولوس شد رساله کولوسیان هم یکی دیگر از رسالاتیه که پولس از روم نوشته. رسالات افسوسیان، فیلیپیان، کولوسیان و فیلیمون رسالاتی هستند که پولس در خلال اولین زندانش در روم اونها رو نوشته. اپافراس به روم میره و با پولس دیدار میکنه و از او درباره مشکلاتی که در کلیسای داشت راهکار میخواد. این احتمال زیاده که انگیزه نوشتن رساله کولوسیان همین ملاقات اپافراس با پولس در زندان بوده. رساله افسوسیان شاهکار پولس در مورد کلیسا هست و رساله کولوسیان شاهکار پولس در مورد مسیح کلیسا هست. دلیلی که این نامه بر مسیح کلیسا تاکید داره در حالی که رساله افسوسیان بر کلیسای مسیح تاکید داشت اینه که بخشی از حملات فلسفی در این مورد بود که اونها بر الوهیت شخص عیسی مسیح خورده میگرفتند. مردم تحت تاثیر این حملات بودند و اونها رو تشویق میکردند که از دیدگاه اونها به مسئله مسیح نگاه کنند نظرات اونها این بود که خالقی خالق دیگر رو به دنیا آورده و اون خالق خالق دیگری رو و اون خالق خالق دیگری رو و همینطور طور ادامه داشته تا اینکه در نهایت اون خالق دنیا رو به وجود آورده اونها عیسی رو هم در زنجیره خلقتهای مکرر خودشون قرار میدادند و منزلت او رو پایین تر از اون چیزی که اعتقاد ما هست قرار میدادند اونها بر الهیت مسیح حمله میکردند و او رو زیر سوال می بردن در حالی که طبق ایمان ما مسیح امانوئل یعنی خدا با ما هست ما هنوزم این حملات رو در مسیحیت داریم میلیون ها نفر هستند که ادعا میکنند مسیحی اما به خدا بودن عیسی مسیح باور ندارند اونها به این حقیقت عظیم که کتاب مقدس هم بر اون تاکید داره و تعلیم کتاب مقدس ما این هست که عیسی همان خدا در جسم بود باور ندارند الوهیت مسیح در هیچ کجا به وضوح و به روشنی رسالات پولس قید نشده به نظر میرسه که طرز کار روح القدس این هست که توسط خدمت تعلیمی پولس شاهکارهایی رو به وجود بیاره چون افراد شیاد قرنتوس انواع مشکلات رو داشتند، پولس این شاهکار الهیاتی قرنتیان رو به ما داد. چون غلاتیان شریعتگرا هستند پولس شاهکاری در زمینه مقابله با شریعتگرایی به ما ارائه میده قاعده یعت قدیم این بود اگر مشکلی نبود نبی هم وجود نمی داشت در عهد جدید هم وقتی کلیساها مشکلاتی داشتند خدا رسولان رو به حرکت در میآورد تا رسالاتی الهامی بنویسند اگر کلیساهایی که پولس بنا نهاده بود مشکلی نداشتند امروز ما این شاهکارهای الهیاتی و این رسالات پولس رو نداشتیم چون در کولوسی حملاتی علیه شخص عیسی مسیح وجود داشت به این دلیل ما با قلم الهامی پولس این شاهکار الهیاتی رو در مورد شخص عیسی مسیح داریم. بزرگی و عظمت ایسای مسیح موضوع اصلی نامه پولس به کولوسیان هست در نامه او به کولوسیان شما متوجه این میشید که پولس نه تنها بر خدا بودن مسیح تاکید کرده، بلکه بر این واقعیت تاکید کرده که اگر شما مسیح رو دارید، شما همه او رو دارید. اگر شما مسیح را از دست بدید، همه چیز را از دست دادید. حولس بر کفایت و شایستگی مسیح تاکید میکنه. مسیح کافی و شایسته هست و مسیح همون چیزیه که شما نیاز دارید. دو کلمه ای که کل پیغام کتاب مقدس رو خلاصه میکنه این دو کلمه هستن. اول خدا. عیسی ادعا میکنه که خدا هست. یکی از راههایی که او ادعا میکنه خدا هست اینه که تمامی بیعت و وفاداریی که شایسته خدا هست برای خودش مطالبه میکنه. کتاب مقدس میگه اول خدا. و ایسا گفته او باید اولین شخص زندگی شما باشه. در لوقا 14 عیسی ما رو با این چالش بزرگ مواجه میکنه. او گفته اگر کسی پیش من بیاید و از پدر و مادر و زن و فرزند برادران و خواهران و حتی جان خود دست نشوید نمی تواند شاگرد من باشد. کسی که سلیب خود را بر ندارد و با من نیاید نمی تواند شاگرد من باشد. با ملاحظه تعالیمی مثل این که به اونها سخنان تند عیسی گفتهاند به این نتیجه می‌رسیم که اگر مسیح برای شما چیزی هست پس باید مسیح برای شما همه چیز باشه چون اگر مسیح همه چیز شما باشه دیگه نمیتونه فقط چیزی برای شما باشه پولس این رو در اولین باب از کولوسیان عنوان می‌کنه پولس میگه که در همه چیز باید مسیح اولویت زندگی شما باشه مسیح تنها چیزیه که شما به او نیاز دارید مسیح در هر موردی کافی است ایسای مسیح کمال خدا هست ایسای مسیح تجلی کامل خدا هست ایسای مسیح خدا هست و او باید خداوند زندگی شما و اولین اولویت زندگی شما باشه اگر ایسای مسیح برای شما چیزی هست باید او همه چیز شما باشه این تأکید و موضوع اصلی این رساله هیرتنگیز هست در کلیسای امروزی من گمون می کنم که مشکلاتی مشابهه همین مشکلات کلیسای کلوسی رو داریم. این زیبایی رسالات الهامی عهد جدید هست. یادتون هست که وقتی کتاب‌های انبیا رو بررسی می‌کردیم گفتم که اگر مشکلی نبود نبی هم نبود اما به محض اینکه مشکلی بروز می‌کرد خدا نبی هم می‌فرستاد تا به اونها چیزی رو که مانع کار خدا شده بود رو نشون بده و بعد از رفع شدن اون مشکل کار نبی هم تموم بود و کار خدا دوباره ادامه پیدا می‌کرد و همینطور یادتونه که در رسالات عهد جدید هم گفتم که اگر مشکلاتی در کلیسه های عهد جدید نبود، هیچ رساله ای نداشتیم. هدف اصلی این رسالات تمرکز بر مشکلاتی هست که مانع کار خدا در کلیسه شده و بعد از اینکه اون موانع از سر راه برداشته شده، کار خدا دوباره از سر گرفته شده. شما متوجه میشید که این حقیقتیه که در تمامی رسالات صدق میکنه و همینطور در رساله رس در کلیسه های امروزی هم افرادی داریم که شریعتگراه هستند و میخواهند بار شریعت را رو بر روی دوش ایمانداران بذارند که مقایر با تعالیمی هست که به ما میگه فقط با ایمان و با فیض نجات یافتیم. همینطور کسانی در کلیسه های امروزی هستند که بر پدیده روحی تمرکز می کنند. اونها تصور می کنند که هر چیز روحانی روح القدس و یا مسیح هست. اونها روحها رو آزمایش نمیکنند. اونها در مقابل تمامی آسیب‌های دنیای روحی آسیب پذیر هستند. بعد در کلیساهای امروزی کسانی هستند که همانند کلیسای کولوسی سعی دارند مسیح رو غیر قابل لمس و او را مانند یک بخار مانند چیزی که نامرئی هست به مردم نشون بدن جالبه که بدونید وقتی عیسی مسیح گفت من آب حیات هستم، شیطان هم هیله‌ای اندیشید. او سعی می‌کنه یا مسیح رو منجمد کنه و این آب حیات رو غیر قابل استفاده بکنه و یا او رو بخار بکنه و این چیزی که قابل استفاده برای دیگران نیست اونها میخوان مسیح رو به شکلی در بیارن که قابل درک و قابل لمس برای کسی نباشه اونها عیسی مسیح و تعالیم او رو به قدری پیچیده و بغرنج میکنن که وقتی دارن از عیسی مسیح و از تعالیم او حرف میزنن شما حتی متوجه نمیشید که اونا دارن چی میگن اینها مشکلاتی بود که پولس در نامه کولوسی و اونها اشاره میکنه و در ذهن شما هیچ مشکلی در راه حلها و جوابهایی که پولس برای این مشکلات ارائه میده پیدا نمیکنید در تعالیم اسطاهیه پولس در نامه کولوسیان ما مطالب کاربردی زیادی پیدا میکنیم که میتونیم در کلیساهای امروزی خودمون و در مشکلات کلیساهای خودمون به کار بگیریم به خاطر محدودیت زمان ما الان میخوام سریعا وارد نامه پولس به کلیسای کولوسی بشم در باب اول پولس رسول نامش رو خطاب به افراد وفادار در بین ایمانداران کلیسای کولوسی مینویسه. بعد توجه می کنید که پولس برای کولوسیان دعا کرده. پولس برای افسوسیان و بسیاری دیگر از کلیساها هم که نامه نوشته دعا کرده. مانند بقیه دعاهای پولس توجه کنید که کولوسیان چطور در لیست دعایی پولس قرار می گیره. در باب یک در دعای پولس چنین چیزی رو می بینید. هرگاه برای شما دعا می کنم ابتدا خدا را که پدر خداوند ما عیسی مسیح است برای وجود شما شکر می کنم. زیرا شنیدم که چه ایمان استواری به خداوند دارید و چه محبت عمیقی به ایمانداران اونشان نشان میدهید. او به اونها میگه که اپافراس در مورد ایمان شما و در مورد محبت شما با من صحبت کرده بعد در ادامه به اونها میگه پیوسته خدای پدر را شکر کنید که شما را لایق آن گردانیده تا در سرنوشتی که در عالم نورانی در انتظار است سهمی داشته باشید. به این دلیل پولس برای کولوسیان دعا میکنه. او چیزهایی میشنوه که شاهدی هستند که اونها واقعا تولد دوباره یافتن اونها واقعا عضوی از بدن مسیح شدن هر بار که پولس میشنوه مردم پیروان حقیقت عیسی مسیح شدن و اونها میگه بنابراین از آن روز که این خبر را شنیدم من دعا میکنم و از خدا میطلبم که به شما یاری کند تا خواست و اراده او را دریابید. وقتی به لیست دوعا پولوس نگاه می کنید ملاحظه کنید که این افراد چگونه در این لیست قرار می گیرند. اگه من و شما لیست دوایی داشته باشیم در لیست دعای من و شما یا احتمالا کسانی رو داریم که الکلی هستند یا کسانی که مریزن یا مشکلات دیگه ای دارن لیست دعای پولوس مثل لیست من و شما نیست میدونید چه کسانی شایسته قرار گرفتن در لیست دوعا بودن، کسانی که پولوس یقین حاصل کرده بود که واقعا ایمان آوردن. چیزی که پولست دعا میکنه واقعا جالبه پولست دعا نمیکنه که اونها شفا پیدا کنن یا از زندان آزاد بشن یا نیازهای مادیشون رفت بشه او اینطور دعا میکنه بنابراین از آن روز که این خبر را شنیدم دائما دعا میکنم و از خدا میطلبم که به شما یاری کند تا خواست و اراده او را در و به شما حکمت عطا فرماید تا امور روحانی را رو درد کنیم ما معمولا با یک لیست خرید به خلوت دعایی میریم و خدا رو به ماموریت میفرستیم اما به نظر میرسه پولس وقتی برای ایمانداران کولوسی دعا میکنه که خدا این کولوسی ها را به ماموریت میفرسته بنابراین او دعا کرد که اونها درک کنند که خدا از اونها میخواد چیکار کنند و در مسائل روحانی حکمت پیدا کنند در آیه ده از باب یک پولس دعا میکنه و میکنه میگه. همچنین دعا میکنم که از قدرت عظیم خدا لبریز شوید تا بدون توجه به مشکلات زندگی همیشه با شادی پیش روید و همواره پدر آسمانی را سپاس گویید که ما را شایسته آن ساخت در برکات و امتیازات آنانی که در عالم نور زندگی میکنند شریک شویم. جالبه که ملاحظه کنیم چرا پولس برای مردم دعا میکنه و بعد چه دعایی براشون میکنه. وقتی پولس در باب یک به ما میگه که مسیح کیه شما میتونید موضوع رساله کلوسیان رو درک کنید اینها بعضی از سخنان عالی در عهد جدید در مورد شخص ایسای مسیح است مسیح چهره دیدنی خدای نادیده است او فرزند خداست و بر تمام موجودات برتری داره در واقع تمام هستی به وسیله ایسای مسیح با وجود آمد یعنی هر آنچه در آسمان و بر زمین است دیدنی و نادیدنی عالم روحانی با فرمان تاج و تخت ایشان و فرماندهان و بزرگانشان همه به وسیله مسیح و برای جلال او آفریده شدند. پیش از آن که چیزی به وجود آید او وجود داشت و قدرت اوست که عالم هستی را حفظ می کند. او سر این بدن یعنی کلیسا هست کلیسایی که از مجموعه مؤمنین او تشکیل شده او نخستین فردی هست که پس از مرگ زنده شد و ثابت کرد که در هر چیز مقام نخست را دارد. وقتی که این آیات رو می‌خوندیم، ملاحظه کردید که پولس مسیح رو به گونه ای توصیف کرده که پاسخی داشته باشه برای کسانی که با عقاید فلسفی به الوهیت ایسای مسیح و شخص او حمله می کنن. اون ارتدادی که در کولوسی وجود داشت و بسیاری سعی دارن همون تفکر رو وارد کلیساهای امروزی ما بکنن، با جملات مهمی که پولس در مورد شخص مسیح اظهار کرد، عقیم ماند. پولس میگه رازی هست که خدا بر او آشکار کرده و به ما میگه که این راز اینه. مسیح در وجود شما تنها امید پرشکوه شماست. تنها امیدی که شما از جلال خدا دارید این واقعیت که مسیح در قلب شماست. این اظهار ای در مورد شخص مسیحه و حقیقتی که شما باید وقتی رساله کولوسیان رو میخونید دنبالش بگردید. پولس علاوه بر این که به شما میگه مسیح کیه؟ همینطور ملاحظه کنید که میگه مسیح چیکار کرده این خیلی شبیه رساله افسوسیان هست او ما را از دنیای تاریک شیطان نجات داد و به ملکوت فرزند عزیزش منتقل ساخت همان فرزندی که ما را به قیمت خون خدازاد کرد و گناهانمان را بخشید زیرا خدا اراده فرمود که الوهیت کامل او در وجود فرزندش قرار گیرد در اثر کاری که مسیح در حق ما انجام داد خدا راهی مهیا کرد تا همه چیز را چه در آسمان و چه بر زمین به سوی خود باز آورد. جانبازی مسیح بر روی صلیب و خونی که او در راه ماریخ همه را با خدا صلح داده است. این صلح شامل حال شما که زمانی از خدا دور بودید نیز می شود. ولی شما روزگاری از خدا رویگردان و با او دشمن بودید. نیتهای بد و اعمال زشتتان شما را از او جدا کرده بود. اما اکنون او شما را به حضور خود پذیرفته است. عیسی مسیح با فدا کردن بدن انسانی خود بر روی صلیب چنین رابطه ای را با خدا ممکن ساخته. در نتیجه این فداکاری هست که مسیح شما را به پیشگاه خدا آورده و شما بدون هیچ اتهام و محکومیتی در حضور خدا استادهید به طوری که دیگر او خلافی در شما نمی تا به سبب آن شما را سرزنش کند. پولس اینجا به ما میگه که مسیح چیکار کرده. آیا این اظهاری انگیز در انجیل و از کار ایسای مسیح نیست؟ در باب یک همینطور پولس به کولوسیان میگه چطور باید از کاری که مسیح کرده قدردانی بکنید؟ تنها شرطش اینه که تماما به حقیقت باور کنید و در آن ثابت قدم استوار بمانید. در خداون قبی باشید، بر این خبر خوش معتقد باشید که عیسی به خاطر شما مرد و هرگز از اعتماد به او که شما را نجات داده بر نگردید. این خبر حیرت انگیزی هست که به هر کدام از شما رسیده و حالا در تمام جهان منتشر می شود و من پولس از گفتن آن به دیگران لذت می برم آیا درک کردید که مسیح کی هست یا نه آیا درک کردید که مسیح چه کاری انجام داده؟ و آیا درک می کنید که چقدر باید از کاری که مسیح انجام داده قدردانی بکنی؟ مطالعه باب یک کولوسیان و حقیقتی که پولس اینجا اظهار داشته پاسخ تمامی این سوالات را خواهد داد این اعلامیه بزرگ خدمتی پولس هست. در باب یک پولس مینویسه این به شرطی میسر است که به طور کامل به حقیقت ایمان داشته باشید و در آن محکم و ثابت بمانید و نگذارید امیدی که به هنگام شنیدن پیغام انجیل در شما به وجود آمد متزلزل شود این همان پیغامی هست که به گوش تک تک شما رسید و اکنون نیز به سراسر دنیا میرسد و من پولوس افتخار دارم آن را به دیگران اعلام نمایم پس هر جا که می رویم با هر کس که مشتاق شنیدن باشد درباره مسیح سخن می‌گوییم و به هر طریقی ایشان را هشدار و تعلیم می دهیم تا همه را به صورت افرادی بالغ در مسیح به حضور خدا تقدیم کنیم کار من همین است و در این راه زحمت می کشم و با تمام نیرویی که مسیح عطا می کند در این زمینه تلاش و کوشش کنم اینجا پولس هدف خدمتی خودش رو شرح میده و بعد در نامه کولوسیان ملاحظه میکنید که پولس به شما میگه چگونه در مسیح زندگی کنید این عبارت کوچک در مسیح یکی از اساسی ترین اظهارات عهد جدید است این عبارت رو میتونید حدود 172 بار در عهد جدید ببینید پولس بیش از هر کس دیگری در عهد جدید از این عبارت خارق العاده استفاده کرده بودن در مسیح به همون ترتیبی که شاخه در تاک قرار داره عبارتی هست که پولس 97 بار در عهد جدید از اون استفاده کرده. اینکه این عبارت رو فقط روی تخت سیاه بنویسیم چیز دیگری هست و اینکه اون رو در واقعیت در زندگی روزمره تجربه کنیم و هر روز در مسیح باشیم چیز کاملا متفاوتی هست. در این نامه زیبا پولس به ما میگه که چطور در مسیح زندگی کنیم. در باب دو آیات 6 تا ده پولس مینویسه حالا که ایسای مسیح خداوند را پذیرفتید پس در او گام بردارید در او ریشه بگیرید و در او بناشوید و در ایمان بناشوید همانطور که یاد گرفته اید با شخ در آن بمانید آگاه باشید که مبادا کسی شما را با فلسفه های پوچ و توخالی بفریبد بد فلسفه های بر اساس سنت های انسانی بر اساس اصول دنیایی و نه اصول بنا شده بر مسیح زیرا در او تمامیت خدا در جسم ساکن هست و شما در او به کمال می رسید که سر تمامی قلم و قدرت هاست این اظهار زیبایی به لحاظ عملی هست که چگونه در مسیح زندگی کنیم و نتیجه زندگی در مسیح چی می تونه باشه در باب دو پولس به ما میگه گه که ما در مسیح چی داریم بنابراین وقتی مسیح را دارید همه چیز دارید و وجود شما از حضور خدا لبریز است. مسیح در واقع حاکم بر تمامی ریاستها و قدرت هاست. ها هنگامی که به سوی مسیح آمدید، او شما را از امیال و خواسته های ناپاکتان آزاد ساخت. اما نه به وسیله یک عمل انسانی یعنی سنت خطنه، بلکه با یک عمل روحانی یعنی تعمید روح شما، وقتی که پولوس این کلمات رو می نویسه، با مشکلات مقابله می کنه. او حالا با شریعتگرهای مقابله میکنه که به کولوسیان میگفتن باید ختنه شوند تا نجات یابند توازن حیرت انگیزی بین نامه پولس به کولوسیان و نامه به افسوسیان ملاحظه خواهید کرد در واقع بعضی ها فکر میکنند که کولوسیان تکرار افسوسیان هست و قدر اون رو به خوبی نمیدونند کولوسیان تکرار افسوسیان نیست تفاوت های زیادی بین این دو نامه هست یکی از تفاوت ها اینه که افسوسیان ای بود که حالت بخشنامه داشت و خطاب به این گروه کلیساهای های زنجیره ای نوشته شده بود نامه کولوسیان نامه محلی بود اون به گروه خاصی از مردم نوشته شده بود یک سری ملاحظات محلی و مشکلات خاصی که در کولوسی وجود داشت اما چون پولس برخی از حقایقی رو که با افسوسیان در میان گذاشته بود به کولوسیان هم میگه به این دلیل بعضی ها فکر میکنند که کولوسیان تکرار افسوسیان هست مثلا در باب سه کولوسیان پولس به ایمانداران میگه که لباس روحانی بپوشند همونطور که به افسوسیان گفته بود او میگه اکنون وقت آن است که خشم و کینه و فحش و سخنان زشت را همچون جامهی پوسیده از تن خود درآورید و دور بیاندازید و جامعه نوی حیات را بپوشید پولس لباس های زندگی جدید رو نام میبره حال که خدا شما را برای این زندگی تازه برگزیده و این چنین شما را محبت کرده است شما نیز باید نسبت به دیگران دلسوز، مهربان، فروتن، ملایم و بردبار باشید و رفتار دیگران را تحمل کنید و آماده باشید تا ایشان را ببخشید. هرگز از یک دیگر کینه به دل نگیرید. بگذارید محبت حادی زندگی شما باشد. بگذارید آرامش مسیح همواره بر دلهای شما مسلط باشد. همیشه شک گذار باشید. تعالیم مسیح را به یاد آورید. و بگذارید سخنان او به شما حکمت آموزد پولس رسول یک نیروی محرکه روحانی بود وقتی زندگی پولس را مطالعه میکنید و چیزهایی در مورد پولس متوجه میشوید قطعا تعجب خواهید کرد که خدا چقدر میتونه روی زندگی یک شخص کار کنه من دوست ندارم به کلیساهای نمونه با شبانهای قهرمان فکر کنم چون که میدونم نیروی محرکه کلیسا در افراد عامی بومی کلیسا نهفته است به نظر من چیزی که ما نیاز داریم اینه که به اکثریت عامی کلیسا بگیم که واقعیت بزرگ خدمت اینه که کار عظیم خدمت به واسطه اونها پیش خواهد رفت. وقتی من نامه پولس به افسوسیان رو بررسی می کردم، باز همین چیزها رو گفتم. اما گذشته از این واقعیت که خدا می خواد همه اعضای کلیسا در خدمت دخیل باشن، نمی تونم این واقعیت رو هم نادیده بگیرم که خدا می تونه کارهای عظیمی توسط یک نفر انجام بده وقتی دعای تلمودی شنید که یک نفر میگفت دنیا هنوز باید ببینه که خدا توسط شخصی که تماما تسلیم او هست چی میتونه بکنه اون شب تصمیم گرفت و با خودش گفت با فیض خدا من میخوام اون شخص باشم مودی زندگی و خدمت عظیمی داشت اما آخرین کلماتش وقتی میمرد این بود دنیا هنوز باید ببینه که خدا توسط شخصی که تماما تسلیم او هست چیکار میتونه بکنه من فکر می میکنم نزدیکترین چیز به این واقعیت که شخصی تماما تسلیم خدا شده و دنیا تا کنون به خود دیده همان زندگی پولس رسول هست یکی از کلیدهای زندگی پولس دعا بود پولس رزمنده بزرگ در دعا بود اگر لیست دعاهای پولس رو یک جا جمع کنید و اسامی کسانی رو که او میگفت مرتبا براشون دعا میکرده ملاحظه کنید من معتقدم که متوجه خواهید شد که پولس یک لیست دعایی منظم داشته. پولس احتمالاً زمان زیادی رو صرف دعا می کرده. ملاحظه کنید که پولس چطور کولوسیان رو در آخرین باب از نامش به اونها تشویق می کرده که دعا کنن. او گفته در دعا جدیت و پشتکار را فراموش نکنید. همیشه در حال دعا و راز و نیاز با خدا باشید. منتظر جواب دعاهایتان بمانید. و فراموش نکنید که وقتی دعاهایتان مستجاب شد از خدا تشکر کنید به خاطر بسپارید که برای ما هم دعا کنید که خدا فرصتهای مناسب ایجاد کند تا پیغام انجیل مسیح را به همه اعلام نمایید در واقع به علت معزه انجیل است که در اینجا زندانی هستم تعالیم پولس به کولوسیان را ملاحظه کنید به مراقبت او از پاسخ به دعاهایشان توجه کنید و بعد بابت و اون پاسخ خدا رو شکر کنید دعا یکی از اسرار روحانی بزرگ و نیروی محرکه روحانی پولس رسول بوده. در سیزده نامه پولس رسول ملاحظه می کنید که در همه اونها به دعا اشاره شده. پولس رسول اهمیت دعا رو برای ما با مثال نشون میده. درست همونطور که عیسی انجام میداد. روزی رسولان نزد عیسی آمدند و گفتند به ما یاد بده که دعا کنیم. رسولان از عیسی میخواستند نه تنها روش دعا رو به اونها یاد بده بلکه از او می‌خواستند هر چیزی رو که درباره دعا می‌دونه به اونها یاد بده. این باعث شد که عیسی زمان زیادی رو به تعلیم دعا اختصاص بده. من معتقدم اگه پولس را از نزدیک می‌شناختید شما هم همون چیز رو به او می‌گفتی. چیزی که تو درباره دعا می‌دونی و من از اون بیخبرم به من هم بگو و همون چیزی که باعث میشه تو زمان بیشتری رو در دعا بگذرونی. در این بررسی بسیار خلاصه از نامه مهم پولس به کلیسای کولوسی سعی کردم در این شاهکار پولس رسول در مورد عیسی مسیح نگاهی کلی به مطالب این شاهکار عمیق بی و شما میتونید شخصا این کتاب رو با دقت و تعمق بیشتری مطالعه کنید در خاتمه شما رو تشویق می کنم نگاهی به دعاهای پولس در نامه کولوسیان بندازید و اون رو با دعاهای خودتون مقایسه کنید بعد سعی کنید یاد بگیرید مثل پولس دعا کنید اگر تا کنون نزد خدا دعا نکرده اید اول باید دعا کنید که خدا به شما قدرت بده تا باور کنید او دعاهای شما رو میشنوه و پاسخ میده و از او بخواید تا کمکتون کنه که راههای او رو درک و پیروی کنید عزیزان اگه یکی از کسانی که میشناسید سالی و یا شکی در مورد هویت ایسای مسیح داشت اون رو به کتاب کولوسیان ارجا بدید. اونجا نه تنها به ما میگه مسیح کیه و چه کاری کرده بلکه به ما میگه معنی مسیح چیه. اون واقعا شاهکاری الهیاتی در مورد شخص ایسای مسیح و کارهای اونه. امیدوارم از درس امروز برکت گرفته باشید. برنامه ما به پایان رسیده. متشکرم که با ما هم راه بودید. تا برنامه بعدی برکت خدا بر شما و خونوادتون قرار بگیره